اوج فرقش با تکبر این هست هر دو یه برشه اشتراک دارن و اون خود بزرگ بینیه متکبرم خودشو بزرگ میبینه از همه سر میبینه کسی هم که عجب داره همینطور خودش رو از دیگران برتر میبینه متکبر یه اضافه ای داره متکبر متکبر این خود بزرگرگ رو در مقابل دیگران میخواد نشون بده. لذا دیگران رو کوچیک میکنه، نه کوچیک می‌بینه. سعی برای میکنه که دیگران رو سخیف کنه خفیفشون کنه، کوچیکشون کنه که خودش بزرگیش مثلا نمایان بشه. چون بزرگیش حقیقی نیست، دیگران رو کوچیک میکنه اما کسی که عجب داره در درونش این سپت رو داره به محض اینکه کار خوبی انجام میده یا کارهای خوبی رو به ظاهر دنبال میکنه یکی از اثرات این کار خوبش این هست که میگه خب من خیلی هم خیلی مثلا آدم خوبی هستم خیلی توانا هستم از دیگران سر هستم اما بروز و ظهور بیرونی براش نداره یه سپت درونی هست افعال و عملی که انجام میده و به ظاهر اعمال قدا پسندانی عرف مردم می پسندن و به انوان کار خوب به حساب میاد یکی از اثرات سوشش بر انسان میتونه این عج باشه بکنه چون مثلا نماز رو میخونه و دیگران کمتر انایت دارن پس آدم خوبیه چون میتونه مثلا فلان دستگیری رو بکنه از افتاده حال پس آدم خیلی خوبیه این احساس رو میگن عج این احساس شاید بیرون ظهور روز نداشته باشه و ظاهران صدمه ای به کسی نزنه اما از درون شخص رو و انسان رو از بین میبره و نابود میکنه کسی که عجب داره در روایت شریف داره که فردی که عجب داره و خودش رو برتر میبینه خود بزرگ بینی داره درباقه خودش رو نابود کرده